رسید به جایی که دیگر ماسه تپه نبود زمین ماهور ماسهزار تا کنار نخلستان کشیده شده بود سیاهی نخلستان دور نبود داربست های و خورشید مکیده چرخچاه های کج و گله به گله تو زمین های سیفیکاری نشسته و افق را خط خطی کرده بودند اندوانه های درشت و ختمخالی و سبز تو جالیس ها به خواب رفته بودند نخلها شق و رق و لاغر و سیاه سوخته پشت سر هم سرک می کشیدند. حالا تنها بود مردان دیگر از رو ماسه تپه شکم گندهی که دامنهش به نخلستان کشیده می شد پشت سر او نگاه می کردند. تمام هوش و حوازش تو نخلستان بود پشت سرش رو نگاه نمی کرد و میدانست مردها از رو تپه او را می پاین. نخلستان به پیشوازش در حرکت بود. چشمان وحشی سیاه درشتش تو انبوه کنده‌ی نخرها میدوید. پاهایش تو ماساهای نرم دفن می‌شد و جاپاهای گنده بی‌قواره‌ای که نوک شستشان رو ماسه‌ها کشیده شده بود پشت سرش ریصه می‌شد. اگه تو نخلسون گیرش بیارم حسابش پاکه. گمون نمی‌کنم خودشم بخواد از نخلسون یاد بیرون. اگه بیادش بیرون باز میکشمش تو نخلستون به غیر از تو نخلستون نمیشه کارش را ساخت تا تاریک نشده باید کارش را تمام کنم آفتو داره میشینه اگه هوا تاریک بشه بد میشه تو نخلستون زودتر از تو سررا تاریک میشه خیلی زود دیدش اما دور بود دیدش که دوتا دستهایش را از هم باز گذاشته بود و پاهاش جفته هم بود و سرش را خم کرده بود تا که پوزش به زمین رسیده بود و رو زمین رو نگاه میکرد. شاخهای خنجری و نیرومندش از مل برآمده یغورش بالا زده بود. او هم خیلی زود محمد را دید. اما تکان نخورد و محمد دید نگاه درشت سیاهش به طرف او میدود. محمد، او را نزدیک خودش حس می کرد. بوی گرم پشمالودش تو دماغ محمد دویده بود. اما از هم دور بودند. محمد نخل ها را ورانداز کرد. یک نخل تناور کبکاب نظرش را گرفت. خوب پیداش کردم. نخل دیه باید تو پیش همین نخل بکشونمش. یه خورده دور، اما میارمش. هر جوری شده باید بیارمش دیر کبکاب. همچی بیارمت که خودت هست کنی. خوب نخلیه بعد یادش آمد که باید بگوید ماشالله و گفت ماشاءالله. و با احتیاط به آن نخل رفت و چشمانش تو چشمان ورزا بود نخل از او دور بود به ورزا نزدیکتر بود چند بره تناب را تو مشتش فشار میداد و خیلی آرام و سبک راه می رفت. به هر نخلی که می رسید کمی آن درنگ می کرد و خوب ورزا را ورانداز میکرد و میکوشی تا او را به خشم نیاورد. چشمانش را از ورزا بر نمی سوزش نگاه خود را روی پوست تن ورزا حس می کرد. خوش مثل یک حیوان شده بود. سرطاپایش را شکار و خونخاری فرا گرفته بود. رسید به نخل کبکابی که کنده گنده بلند زمختی داشت و دو پنگ باربر خارک گلدنباز، از تو آویزان بود. ایستاد. روبروی ورزا ایستاد و به درخت تکیه زد. گاو بی حرکت ایستاده بود. به او نگاه می کرد. با نگاه سوزانش میدید که ورزا دارد رو پاهایش می لرزد. خیلی خشمگینه. دیوونه شده. خوب جاییه. دیگه از اینجا بهتر نمیشه. از اینجا تا اونجا که او وایستاده خودش یه میدون راهه. تا بده خودش را اینجا برسونه نفسش میبره و منم همین را میخوام منم میخوام که نفسش ببره اما چه ورزای قشنگیه مثل عروس میمونه اگه تو ورزای من بودی اینقدر کار ازت میکشیدم که دیگه یاغیگری از یادت بره تو مردونگیت فقط برای این سکینه بیوزن و بیکس و بیپناهه خوب غوز کردی و من را پا میپایی چقدر بد کاری کردن تو را مهارت نکردن اگه من بودم مثل روز دماغت را می میکردم و تو شلقه طلا رد میکردم تا دیگه عوض نکنی یاقی بشی تو گرمایی شدی؟ آفتا تو مغز سرت خورده دیوونت کرده از نخل کبکاب خیلی خوشش آمده بود از باروری و نیرومندی و کنده کلوفتان خوشش آمده بود بعد با پوست سینش مهار سیمی را از تو جیب عرق خوشکانده پیراهن خود حس کرد میدانست مهار آنجاست. از وقتی که آن را تو جیب پیراهنش گذاشته بود آن را رو پوست سینهش حس می کرد و خستگیش از یاد رفته بود به سایه های دراز نخلها و به برقه آفتاب رنگ پریده نازکی که روز زمین افتاده بود نگاه می کرد و می دانست که آفتاب دارد تو دریا یله می شود دلش نمی خواست به ورز آسیبی برساند جوان و نیرومند و خشنگ بود حیف تو نیست که اینجوری خودتو به دیوونگی بزنی؟ آخه آبت نبود نونت نبود چرا تو اینجوری شدی؟ اما اگه خودت مثل بچه آدم بیایی با هم بریم پیش سکینه هیچ کاریت ندارم بهت قول میدم که برم از تو کبرم یه بقل از اون بریده های خوشمزه بیارم بدم بهت بخوری گاو آرام ایستاده بود و به اون نگاه می میدونم چته میخوای یهو حمله کنی منم هم همین را میخوام بیو، بیو، بیو، بیو، چاره ای نداری، باید بیای، بیا، بیا، ماشاءالله که تو چقدر قشنگی، چه خوب میشه ازت کار کشید، خیال نداریت جات تکن بخوری، حالا ببین چه جور میارمت این طرف طرفش را نگاه کرد و میدانست کسی تو نخلستان نیست، سرش و صورتش داغ شد، بیخ چشمانش به هم کشیده شد پاهایش را از هم باز کرد و نیم خیز شد. ناگهان رسن قاتمه را تو هوا چرخاند و فریاد زد. اوها اوها! گاف تکانی خورد و چند تا لگت تو هوا پران. بعد دور خودش چرخی خورد. باز به سوی محمد ایستاد و به او نگاه کرد. چشم محمد رو زمین دنبال سنگ می گشت. سنگ نبود. چند تا تپاله خشکیده پیش پاش افتاده بود. خمشد تپالهی را برداشت و با قوت تمام به سوی گاف پرد کرد. بعد چند قدم آمد جلو و تو هوا ورج ورجه کرد و رسن راتکان داد و پشت سر هم نعره کشید. گاو هوایی شد. محمد میدید دید که شهله زیر گلوی او می لرزید و پوسته تنش می پرید. گوی پوسته تنش را زنبور می گذید. نگاه به سوی محمد خیز برداشت. میدوید و جفتک میانداخت. محمد همچنان در جست و خیز بود و نگاه دونده‌اش لابلای نخلها را میشکافت و با تکان دادن رسن او را تحریک میکرد. گاو دو برداشت و با حمله مرگبارش از لابلای نخلها چپند در قیچی به سوی محمد حمله آورد. محمد پس پس رفت و دوباره آرام به نخل کبکاب تکیه زد. و رسن را رو از روی زمین پیش پای خود انداخت دستهایش آرام و غلش آویزان بود بیا که خوب داری میای اگه تو گاو نبودی لابد باید پیش خودت فکر میکردی که این آدمیتا داخل چه مرگشه که سیخونک زیر دنبت میکردی که بهش حمله کنی اگه شاخت نشکنم برای هیچی نخوبم داشت نزدیک میشد و محمد صدای نفیر خشن خشمالودش را میشنید بینی و پوزش تر بود و مف لزج سبزی از های دماغش بیرون زده بود محمد رطوبت بینی او را تو صورت خودش حس میکرد سر سرگاف پایین بود و نوک شاخهای برندهاش را آماده زدن کرده بود حالا دیگر آنقدر به محمد نزدیک شده بود که تیزی مرگبار شاخهای او را رو سینه خودش حس میکرد ولی او آرام سر جایش ایستاده بود و پشتش را به کنده نخل زور میداد. در این هنگام گاو خیز برداشت و جفتکی پراندو به محمد حمله کرد وقتی محمد سوزش نفیر او را رو تن خود حس کرد ناگهان با یک خیز جاخالی داد و از کنده نخل کنار رفت سر گاو با تمام نیرویی که در حمله داشت چنان خورد کننده به درخت خورد که پاهاش تو غیر جوشنده ماسه ها چفت شد و تنش چرخ خورد و سرش با تنش تلو تلو خورد. منگ شده بود. محمد امانش نداد. از عقب جهید و شاخهایش را گرفت و بیرحمانه دلگد مرگبار خوابان تو شکمش. گاو سوس شد و رو پاهاش تاب خورد. محمد پرست یافت و به چابکی جای خود را عوض کرد و همچنان که شاخهای او تو دستش بود رفت جلوی او و با تمام قوت سنگینی خود را روی او انداخت و او را از عقب محکم به نخلی کوبید و همان دم دلaget زد به دستهایش که تعادلش از دست رفت و به زانو درآمد اما هنوز پاهای گاو راست رو زمین ستون بود و با خشم تمام سرش را تکان میداد و محمد را چند قدم رو زمین کشانید محمد پشت سر هم چهار مشت مانند پتک روی شقیقه های او کوبید گاو گیج گیج شد و رو پاهاش شل شد و رو زمین افتاد بعد به چالاکی شاخهایش رو را محکم پیچاند و سرش کج شد و تنش کج شد و رو پهلو غلطید زبون بسه. میدونم دیگه حالا گیجی اما اگه یه دقه مهلت بدم باز پا میشی عرتی راه می اندازی. اون وقت دیگه شمرم جلودارت نمیشه سپس سنگینی خود را روی سر گاو انداخت و با یک پایش رسن را که از او دور افتاده بود به سوی خود کشید و بیدرنگ تند تند دست و پای او را محکم بست دانه ماسو و عرق روی گونه و گردنش شسبیده بود خرقش تنگ بود پنداری با گاو دشمنی و کینه دیرین داشت گره ها را با سنگدلی میزد. من خودم هم آخرش یه روزی مثل تو یاقی میشم و سر می به بیابون اما مال من یه جور دیگه است مثل مال تو نیست دیگه کسی نیست حریف من بشه مرگ دفه شیونگ دفه پولم را تا دینار آخر از تو گلوشون بیرون میکشم. از نوک بینیش عرق می چکید آنگاه بلند شد بالای سرش ایستاد اندامش گنده و نخراشیده بود هیچ کس تو نختستان نبود رتب و خارک های فراوانی زیر کبکاب ریخته بود اینها وقتی که سر ورزا به درخت خورد ریخته بود حالا دیگر آفتاب زرد شده بود و حرم مرطوب گرما تو نخلستان پیچیده بود محمد بوی رطوبت روی پیشهای نخل را تو دماغش حس می کرد ناگهان زردی آفتاب پرید و رفت و گاو به پهلو افتاده بود و خورناس می کشید و شب داشت رخت خوابش را تو نخلستان پهن می کرد گاو نفس نفس می زد. و آنجایی که پوزش یک رو زمین افتاده بود شیار مرطوبی رو ماساها پدید آورده بود پوست تنش رنگ شیر بود و یک لوزی موی سیاه میان پیشانیش بود و چهار دست و پاش تا بالای سومش سیاه بود منگوله دومش هم سیاه بود شکمش با نفسهای تند بالا و پایین میرفت. پوست پیشانیش که به درخت خورده بود روی لوزی سیاه دریده بود و خون ازش جاری بود و خون از تو گودی پیشانیش تا رو پوزش دویده بود و چشمانش خفته بود آن گوشش که بالا بود می پرید دمش آرام و بیتکان رو زمین افتاده بود دیگه می میکنی اونا ماه مبارک رمزون؟ سپس خندید و به چابکی سیم مهار را از تو جیبش درآورد و حلقه آن را باز کرد و چندک به زمین نشست با قساوت نوک سیم را از تو دیواره میان دو تا سوراخ بینی او رد کرد گاو غلطی زد و خودش را رو زمین کشانید محمد پرید رو گردنش نشست هنوز مهار درست جا نیفتاده بود خون از بینی گاو فبواره زد دو سر سیم را از بیرون به هم سفت پیچید انگشتان گنده و بیرحمش رو بینی و تو خونه بلرم گاو بازی می کرد سیم مانند موم تو دستش شکل می گرفت. آن وقت یک سر تناب را به مهار بست خونه پیشانی ورزا غاطی خونه بینی شده بود پاشو شد دیستاد و بلند بلند گفت من میدونم دردت میاد دلم برات میسوزه تو هم جون داری و دردت میاد که کسی سیخ تو گوشت تنت فرو کنه اما آخر تو چرا باید مسکنی و اسباب زحمت خودتو دیگرون بشی؟ زنکه بیوه که غیرتو نوناوری نداره تو جایی شوورشی باید باش رفیق باشی نازش بکشی نه اینکه بری مسکنی و یاقی بشی و بزنی به نخلستون و یه کاری کنی که همه اهل ده ازت بدشون بیاد تو نمیدونی چقدر بده که همه از آدم بدشون بیاد حالا همه اهل دشمنت شدن این خوبه؟ آخه این لحراس به بدبخت چه کارت کرده بود که با شاخت کونش را پاره کردی؟ بعد بلند خندید و دلش می‌خواست گاو گاف هم باش بخندد. اما گاو اخم کرده بود و درد داشت و آن وقت محمد دیگر نخندید. گاو همچنان به پهلو افتاده بود و نفیر می‌زد و ماسه های تشنه خونش را می مکیدند. نشست و با احتیاط اول پاهای او را باز کرد. ببین چقدر هوا تو دارم؟ اول پات رو باز میکنم که دفعه پانش یاسیب ببینی اما هنوز خیلی گیجی سپس دستهایش را گشود و رسن دراز شد و دستش بیخ رسن آنجایی که نزدیک مهار بود محکم گرفته بود از بینی ورزا خون میآمد و ماساهای تشنه از خون پوزش کلوفت شده بود هنوز گیج بود و چشمانش بیحال بود حالا دیگه رفیق شدیم. خیلی باید بپخشی تو خودت میدونی که من با رفیقم. اذیتت کردم. اما اگه تو هم جای من بودی ناچار بودی همین کار را بکنی. اگه ولت کرده بودم میترکیدی. اما بدیش اینه که تو نمیدونی آدمیزاد چقدر بدجنسه اگه تو از آدمیزاد بدجنستر بودی این تو بودی که میباس به دماغ آدمیزاد مهار بزنی. حالا باشو بریم ارف وخور بریم افتار کن. یه بغل بریده خوشمزه که بهت قول دادم برات میارم. افتار مهمون منی، آخه تو هم امروز مثل ما روزه بودی، تشنو گشنه گوشه نخلستون بودی بروی نون بخور صد تا نون صدقه بده که به فریادت رسیدم، اگه نگرفته بودمت از گشنگی میمردی اما نمیخوام تو پیش خودت خیال کنی که محمد آدم ظالمیه، من از ظلم بدم میاد تو نمیدونی که این بندریا چه ظلمی به من کردن، میخوان هرچی پول با خونه جگر جمع کردن بخورن حاکم شر و وکیل و بززاز و دلال همشون برای خوردن این چند قرون دار و ندار من دست به یکی شدن اما من نمیخوام به کسی ظلم کنم و نه از کسی ظلم ببینم اگه نخوان پولم را بدن از تو بدتر سرشون میارم. اگه سرم بره باید حقم را بگیرم آرام و مهربان گردن ورزا و شهله نرم زیر گلوش را نوازش می مثل اینکه گاو افسون شده بود چشمانش نیمه باز شد از نوازش او خوشش میآمد. بعد رو شقیقه هایش نوازش کرد. خیلی سخت زدمت. باید ببخشی. خودم ما منوز مشتم درد میکنه. عیبی نداره. بزرگ میشی یادت میره. حالا پاشو بریم. آرام آرام دستی که بیخ بند نزدیک مهار گرفته بود تکان میخورد. خورد. گاو کمی حالش جا آمد و سرش را از رو زمین بلند کرد. آرام جلوش رو نگاه می کرد گوشهایش و نرمی زیر غبغبش می لرسید محمد آهسته مهار را کشید و بعد داد. گاو ناگهان با یک خیز از رو زمین بلند شد آفرین به تو ایوون فهمیده کی میگه تو گاوی؟ تو آدمی؟ ببین چه زود فهمیدی که باید چی کار کنی؟ تمام حواسش پیش ورزا بود دیگر نمیخواست کوچکترین آزاری به او برسد این خیز ناگهانی را پیش بینی کرده بود برای همین بود که وقتی ورزا خیز برداشت که بلند شود او دستی که مهار را گرفته بود با خیز گاو همراه و هماهنگ ساخته بود تا مباد و گاف رنج ببیند و بینیش پاره بشود هنوز دست و پای گاو میلرزید، مثل بره رام شده بود تکه بند قاتمه که نزدیک مهار بود از خون خیز خورده بود رنگ جگرک گرفته بود باقی رسن قاتمه را که رو زمین بود جمع کرد و آهسته و آرام برزا را به جلو راند پاهای گاو نرم و با تعنی از تو ها بیرون آمد و گیج و تلو تلو خوران بغل محمد راه افتاد محمد مهار را یک هوا به جلو میراند دستش زیر پوزه گاو بود و زیر لب او را با دست به طرف جلو هل میداد و نمیخواست مهار را بکشد میدانست زخمش تازه و دردناک است و میخواست که فقط گاو حس کند مهار شده و مقاومت نکند و میدانست که گاو حس میکند که مهار شده و مقاومتی ندارد وقتی از نخلستان بیرون آمدند صدای آفرین مردمی که رو ماسه تپه چشن براه بودند و حالا شمار آنها زیاد شده بود هوای داغ سنگین رنگ پریده صحرا را همه همه آنها منتظر برگشتن محمد بودند پیراهن محمد و دستهایش خونین بود داس پولادین گداخته خورشید تو دریا غرق میشد و رو سطح آب اخگر مزاب جوش میخورد فریاد بچه ها نمیبرید هنوز از پیشانی و بینی گاو خون می آمد. محمد به بچه ها اشاره کرد نزدیک نیایند. هنوز با آنها فاصله داشت. اما صدای حرفشان را میشنید. شنید. بچه ها پخش شدند و رفتند به طرف بابل و محمد. گاو را تا زیر درخت بابل برد و آنجا ایستاد. بعد گفت حالش خوب نیست. امشب مهمون منه. باید خودم تیمارش کنم. محمد گفت و رو گرده گاو دست کشید گاو خسته و وامانده شده بود معلوم بود حالش خوب نیست تو بچه ها هم همه افتاد این دیگه برای سکینه مال نمیشه باید حلالش کرد نه این دیگه پا نمیگیره باید سرشو برید خیلی صدمه دیده معلوم نیست چه به سرش آورده زایر چه کارش کردی که مثل موش شده بفرستیمش بهشت. حیف میشه به کارد برسونینش سکینه هیچ نمی گفت، دلش میخواست گریه کند، به گاو و محمد نگاه می کرد و نمیدانست چه بگوید گاوش عوض شده بود، تکیده شده بود و آن گاو همیشگی نبود ناگهان دوید به طرف گاو، اما نیمه راه گامهایش را سست کرد و آهسته به گاو نزدیک شد دستش را دور گردن گاو انداخت و گردن او را ماچ کرد محمد هیچ نگفت هیچ یک از بچه ها حرفی نزد. بعد سکینه گریه کرد و باز گردن گاو را ماچ کرد و نازش کشید. رو پشتش دست میمانید و پوست زبرش را ناز میکرد. صورت سوختش از اشک برق میزد. تو خالهای آبی چهرش چین افتاده بود و میخواست حرف بزند صدا از گرویش در نمی‌آمد و چانه و لبهایش میللحرسی. محمد گفت زیره گاوت هیچ باکش نیست گوش برف این بچه ها نگیر اینا شوخیشون گرفته خسته و گشنه هست اگه این بچه ها جای اون بودن حالا ترکیده بودن یه خورده روغن اغرب دواشه که خودم میذارم رو زخمش خودم میبرمش خونه تیمارش میکنم فردا که حالش خوب شد ببرش تو گاف رو میبینی که مثل رخش میدوبه